زن روی چمن کمابی شیبدار جلوی خانهش ایستاد. آفتاب مایل و درخشان عصر به پشتش میتابید. در جلوی او به فاصله دیویس متری پسرش لاینل روی نیمکت عقب قایق پدرش نشسته بود. قایق که به ساحل بسته شده بود و بادبان اصلی و سه گوشش را پایین کشیده بودند روی آب شناور بود و امتدادش با لبه بارانداز یک زاویه راست درست می‌کرد. در فاصله ده پانزه متری جلوی آن، یک لنگ چوب اسکی روی آب گم شده یا فرسوده واشگون شناور بود. اما روی دریاچه از قایق تفریحی خبری نبود. تنها منظره پشت، یک کرجی موتوری دیده می شد که به طرف بارانداز لیچ پیش میرفت. بابا حس می کرد که به سختی میتواند لاینل را پیاپی زیر نظر داشته باشد. آفتاب هرچند آنقدر را گرمی نداشت. چنان درخشان بود که هر تصویری را که نسبتاً در فاصله دوری قرار داشت، پسر یا قایق تفاوتی نمی کرد ماننده چوب توی آب کج و لرزان نشان میداد. بوبو یکی دو دقیقه که گذشت، تصویر را رها کرد. سیگارش را به شیوه ملوان ها ریز ریز کرد و سپس به طرف بارانداز را افتاد. ماه اکتبر بود و انعکاس نور بر تخت‌های بارانداز دیگر صورتش را نمی‌آزرد. قدم زنان که میرفت آهنگ بچه کنتوکی را با سود از میان دندانهایش میزد به بارانداز که رسید دو زانو روی لبش نشست صدای برخورد زانوهایش شنیده میشد و نگاهش را به پایین به لاینل دوخت لاینل که کمتر از یک طول پارو با او فاصله داشت سرش را بارا نکرد بابا گفت آهای رفیق دزده دریایی سگ کثیف من برگشتم انگار کسی ناگهان از لاینل که هنوز سرش را بالا نکرده بود خواست که قدرت دریا اش را نشان بدهد. سکان آزاد قایق را تا انتها به راست گرداند. سپس بیدرنگ به طرف چپ برگرداند. چشم از عرشه بر داشت. بابا داشت. گفت منم دریابان تننبام با نام خانوادگی گلاس اومدم بازدید کشتی در این موقع جوابی به گوش رسید. لاینل گفت تو دریا سالار نیستی تو زنی هر جمله لاینل معمولا وقفه‌ای داشت به طوری که کلمه‌هایی که میخواست با تأکید به زبان بیاورد به جای اوج گرفتن آهسته ادا می‌شد بابا نه فقط به صدا گوش داد بلکه انگار آن را تماشا کرد کی اینو به تو گفته کی گفته من دریا سالار نیستم لاینل جوابی داد که شنیده نشد بابا گفت کی بابا بابو که هنوز دوزانو نشسته بود دست چپش را میان رانهایش برد و روی تخته های گذاشت تا تعادلش را حفظ کند گفت بابات آدم نازنینیه، اما باید بگم که چیزی از دریا و کشتی سرش نمیشه درسته که من تا وقتی پام رو بندر زنم راست میگی اما ای واقعی من از اول همین الان و همیشه حرفه بی نزیره لاینل گفت تو دریا سالار نیستی چی فرمودین؟ تو دریا سالار نیستی، تو همیشه زنی. مدت کوتاهی سکوت بود. لاینل که اهرم سکان را دو دستی چسبیده بود، با تغییر مسیر قایقش این سکوت را پر کرد. شلواره خاکی رنگ و پیراهن بی آستین تمیز و سفیدی پوشیده بود که روی سینهش تصویر رنگی آقا شطر در حال ویولون زدن دیده میشد. آفتاب پوستش را کاملا قهوهی کرده بود. و موهایش که رنگ و حالتش به موهای مادرش رفته بود از آفتاب کمی رنگ باخته بود بوبو که نگاهش میکرد گفت خیلی از مردم خیال میکنن من دریا سالار نیستم برای اینکه که بوغ و کرناور نمیدارم همه رو خبر کنم و تعادلش را که حفظ میکرد از جیب شلوار جینش یک سیگار و کبریت بیرون آورد من هیچ وقت وسوسه نشدم که مقامم به رخ مردم بکشم به خصوص به پسر بچههایی که وقتی حرف میزنم حاضر نیستن سرشون بالا کنن منو ببینن اگه این کارو بکنم این حرفه بینزی رو ازم می گیرن. و بی آنکه سیگارش را روشن کند بلند شد و بی دلیل شب عورغی استاد با دو انگشت شست و نشان دست راستش یک بیزی درست کرد بیزی را به طرف دهان برد و مثل آنکه بخواهد سازی بادی را بزند شیپور مانند از دهانش درآورد لاینل بیدرنگ سرش را بالا کرد. با اینکه که میدانه صدا ساختگی همه ی وجودش دچار تکان شد و دهانش باز ماند. بابو را که ترکیبی از صدای شیپور خاموشی و بیدار باش بود بدون مکس سه بار تکرار کرد. سپس برای رعایت تشریفات روبه روبه رو به ساحل روبرو سلام نظامی داد. وقتی که پس از این کار دوباره دوزانو روی بارنداز می نشست در چهرش پشیمانی زیادی خوانده می شد. گویی به انجام یکی از مراسم دریا نوردی دست داده و دوچار جذبه شده بود که حضور مردم و پسر بچه ها در آن ممنوع باشد. لحظه ای به افق کوچک دریا خیره شد. سپس مثل اینکه که به یادش آمده باشد که کاملا تنها نیست، سرش را پایین انداخت و به لاینل که هنوز دهانش باز بود نگاهی انداخت. این صدای محرمانه شیپوری بود که فقط دریا سالارها اجازه دارند بشنوند. سیگارش را روشن کرد و کبریت را مثل هنر پیشه های با دودی ممتد و باریک خاموش کرد. اگه کسی بو برده باشه که من به تو اجازه شنیدن این صدا را دادم و سرش را تکان داد و دوباره دوربین چشمش را به افق دوخت. باز هم بکن. غیر ممکنه. چرا؟ بابا شانه را بالا انداخت. اولا اینجا تا بخوای افسر جز هست؟ جا, به جا شد و چهار زانو نشست جورا پای را بالا کشید و سریح گفت اما بهت میگم خیال دارم چیکار کنم. اگه بگی چرا فرار میکنی هرچی صدای مهرمانه شیپور بلدن برات میزنم. قبول میکنی؟ لاینر بیدرنگ نگاهش را به عرشه قایق انداخت و گفت نه چرا نه؟ برای اینکه برای این که چی؟ لاینر گفت برای این که دلم نمیخواد. و برای تأکید گفتش؟ احرم سکان را حرکت دار